نادر بود این کتاب از از بالله من الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين و صلو الله علی سیدنا رسول الله و آلی طایبین طاحتین المعصومین و علیه از دائمت و علیه اردائی مجمعین اللهم رفیق و جمعی المشترین و الحمد رحمتی و رحمت رحمتی که بود در روایت اخذ از ذههی و کتاک کردن محاسه از کردم که یک روایت دید که تفصیل بین آرزین و بین مقدمه لحیه داره این بباید خیلن در کتاب وسایل از جامع بدنتی از مستطرفات سرائر و از کتاب قرب اصناب و از کتاب خود علیه جعفر نقل شده و اشارات سنوی گفته شد از کنیم این در لا روایات ما سابقه داره اهل سنت این روایت ندارم تا اون چیزی که من دیدن اما در روایات ما سابقه داره که در دو مصدر از مصادر ما آمده که ظاهرا طولی باشن یعنی یکیش از یکی دیگه درسته ظاهرا احتمال میشه که یک مصدر به هر حال این دو مصدر فعلا هر دوش جزء میراث های مصری ما هستند یکیش کتاب جعفریات هم کتاب دائم الاسلام هست. و در هر دو کتاب دو بار نقل شده یک بار از امیر المؤمنين. از رسول الله یک بار از امیر کلام خود امیر المومین مقوفاً این توضیحات رو ما اگتر و در این شای اضافه بر اون چه که در کتاب علیه مجرفر آمده یه نکته دیگری هم اضافه کرده در یه نسخهش اولا در علیه نجحفر داره که آرزه این اشکال نداره اما مقدمه لحیه فلا این اون چیزی که در کتاب علیه جعفر آمده اما در این دو کتاب با حالا مجموعش اولا آرزه این آمده که اشکال نداره صدقه هم آمده در صدقه که این گوش باشه به اصطلاح فاصله بین گوش یعنی زیر موی سر از اولا زیر مونی سر بکاین بعد آرزین بعد مقدمه لهیه پس در روایتی که ما الان داریم در اصل که به رسول الله نصفت داده شده یا به امیر المؤمنین اون روایت به اصطلاح به امیر المؤمنین نصفت داده شده صدقین اینو آرز لهیه هست که یجوز الان مقدم لحیه هم به مقدار قبضه مال امیرانون تو مقدمه لهیه داره قبضه توی رسول اللهش نداره این دو تا روایت توی یکیش هست توی یکیش نیست وقت این دو تا نکته هست که در روای تحلیل جعفر نیست یکی صدقه این در روای تحلیل جعفر نیست یکی هم به مقدار قبضه در مقدم دهیه این هم توی روای تحلیل جعفر نیست فرس هم مغارمه که بکنیم. و شاید مشغول پتباه هم همین باشه و از کاری به احتمال بسیار قوی این کلوبت هم بوده حالا چه رازی سکونی در حلس کردم اونا ما نمیدونیم و به احتمال بسیار بسیار قوی در کتاب قضایه و سنانال احکام بوده پس این اصل تفکیک که ما بین مقدم لهیه و آرز لهیه و قبضه و غیر قبضه اصلش برمیگرده در میراسهای ما به امیرالمومنین در واقع صحیحن و صحیحن البته به لحاظ سندی تمام اینها سندی سندیگار به لحاظ داره اما اما بگیم مثلا با مجموعه شواهد و با جمع شواهد بلا به لحاظ سندی داره این راجع به این روایت بود و شرح کافی برای روایت علی بن جعفر. البته مقام زلالت رو بعد ارز میکنم کارز رایت هر به لحیه میکنم و برمات هر این راجع به این روایت یه ای هست من همیشه عرضی میکنم اگر آیان این جفتایی داشته باشه مثل کشکول مانم بعدی روایات نکاتی داره که اینا اصلا جمع بشه مجموعش لکیفه در این کتاب در این روایت واحده این یک نقطه در اون متن جعفریات این طوره قال و عمره انترد جلد لحیه عمره اما در کتاب دارم الاسلام دیگه قاله نداره بعد از اینکه آرزهی لحیت احضاره لا رجل و لها بصيغه فعل داره. اینم اگر دو رو یکی حساب بکنیم بگیم یک روایت یه نکته لغتی اصولی داره اون نکته لغتی اصولی نه که در ارتكاز انسان عادی صيغه فعل مصداق امره چون ما در بحث همه یاتون باشه یه بحثه جو به ماده امره یه بحثه جو به هیاته شون هم خود آمر تو به از آمر رو نیم خود آمر توش الزام است، این یه که به کذاب. میشه نیم بیشتر ارتکازشون هیئت فع و آمر میکنیم به یکشنبه میتونیم نکتی سالیویو کنیم. چون دادگاهی که جاه داره و آمره هم آمره داره، یعنی ماده آمره داره کار اینو نکات لطیفی داریم که وقتی پیدا میشه تو, تو ازیاد میگم. میشه کارگزار باشه برای بحثای به اصولی همه در یه مفتی زیگهش که در دائم آماده همون باید در دائم جن رد جمعه اوله ها جمعه این دوتا اگر یکی باشه اینطور طور معلوم میشه که از مفاد حیعت افعل تعبیر به امر میکردن یعنی اگر مفاد حیعت افعل باشه امره ماده امرو اصطور میکردن این یک سیلتی دیست ما امیسا بالا بحث اخذ از لحیشون یادم رو حالا بحث اخذ به همین روایشون تکیم کردیم رو حالا تمام بکنیم برای یه بحث روایات اخذ رو برداریم بقولو مرد ترانتز بحثه چون در روایات لحیه عدم جوازه حلق لحیه یکی دو تا روایت هم در کتاب مستدرک بنامه بود که بخونیم نزم اونو که تحبیل شد یادیمون حالا بخونیم حالاین در کتاب دو سه روایت دیگه هم اوگرده در باب حرمت حلق لحیه یکیش این باب چهه از مستدرک ففلی چهارسد از همین جدهه که مستدرک اما عباب آداب الحممان باب چهه حالا یکیش رو بعد میخونیم یکی از عباد الله آلین حدیث شماره دو روا هممادوب نزی ان مخالد این مجالده مجالده بسوله هم انجابر اونا من چیزی نمیشه شعری از جاوید نعم جاواد جاوید عبدالله انصاری موقتا الان پیدا نکردم این سنه الان نه ایران 78 دیگه در کتاب اوال ال الهی که کتاب کتاب ما از کتابی معروف خود مؤلف نسخه شیخمون بودی اوالی اسمش میشه اوالی بعد بعد یا نمیذونه اوالی که معنا ندیده چون لولو تا آلی این که عالی بشه میگن این تکیه قیاسی اوال کتاب اوالی هست چیزی که صحیحش که مؤلف خودش که اسمودش اولیه، اون تصرف بعدی ها دوزن اوالی رواه احمده بنوزه در مجاله در شعبی انجابه الان من نگیرم شاید در کتب اهل سنت باشه و این حدیث نسبتاً معروفیست به این اهل سنت قال, قال رسول الله صلی اللہ علیه وآله لیت من نام من سرن اینجا در حاشیش نمکل از مجموعه بحرین صدقه هون به لسانه خاطبه هون به ما یک ره مثلا حرکایی بدش بود لیسمه نامن صدق ولا خرق اینجا خرق رو نارد کرده ولی جهالت به هم آقا حالا دیگه خرق بچه حالا یکیش احمق فیزاته این دیگه چطور خارج از سنته لیسمه من لیسمه نامن خرق حالا اینجور مهمه که در حاشی ولا حلق کلمه حلق اینجا آمده این لیسمه نامن ولا خرق ولا حلق این حدیث که نهاری خیلی بود از که مرحوم خود عوالی صاحب عوالی رضوان الله تعالی علی ابن عبی جمهور ما به کتاب و ایشان خیلی .قال نیم کدارم یه حاشیهی داره این عبارت حاجی نوری مطلب می‌کنه. قال في الحاشيه في شرح الحديث وال حلقه حلق حلقه البته این والله حلقه هي حلقه اللحيه ضمیر مؤنثه مردن خیلی عجیبه نه ابن خیلی های عجیبه. قال فی فی شرح الحديث خود مرحوم ابن نوری جمهور یه حاشیه در حوالی داره و همین کتاب سال چاپ نشد اونجه 20 سال یه 22 ساله در قوم خدا رحمت و نحال آی محمدی عربی های آشمشتب و عربی زنان الله این چاپ هرونه کتاب رو در چهار این در جلد یک کتاب آمانی. و یکی از خوبیهای های چاپیونیش اینه که هواشی مربون محلق رو داره هواشی خود ابن عربی رو داره و تصادفاً دو نسخم داره در یه نسخه زنده بوده در یه نسخم فکر کرده بود دو در یکیش وقتی که استنصاف شده مرمومه علم زندگی بودیه شده و هر حال من به خاطر اینکه که حفظ بشه مخلویشان کامل هاشی خود مرمومه های به اسطلاح کیل رو می کنم مرمومه های به اسطلاح ابنه جمعه هاشی که زده اینطوره اصل مشتق قومن از سلیقه، این سلق رو از سلیغه گرفته بادا. نمیشون و یه کس را تول کلام ایشون سلق رو به معنی زیاد صحبت کردن گرفته نه خاطبه و به مایت ره ایشون امکنه کم صحبت همه که هر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر خب این خاطبه و مایت ایشون نهیه کس را تول کلام محل وقاهه و قلطه حیاء انسان با وقاهت نوسته ول هر هیه ال... این که شما ده زمیر مهندس همونده ول حرق لعیه ول خوه حالا اینجا خوه آورده اون ول سرعت و انفاق المال و تبدیر رو یا تبدیر یا سرعت و تبدیر و یا به مال رو رو نه به معنی انسان پولیش رو خرج بکن تونتون نگه سرعت انفاق المال و تبذیره فی غیر لأغراض صحیحه آدم نمیخواه سرعت یواشن که آدم خرص کن در دیره سریعه باطل <تصحيح> سرعت نمیخواه سرعت انفاق المال و تبذیره فی لأغراض صحیحه یقان نم... رجلون اخرقلیت نید و از خوده ایشون عورده این من توی کتن بید. توی این مثل نهایی نعصی نمیده چون آسان ازاکان لا یقی من مالی شیعن الا و یونفرهو یا یونفرهو یا یونفرهو حالا چیزی پول در دستش نگه نمیداری ایشون اخرقالیت رو اینجور اگر اینجور باشید اخراج صحیح و مره صحیح نداره حالا برای اخراج مال نگه نمیداره گفت قرار در کف آزادگاه نگیرد ما تونتون میداره حالا اخراج صحیح باشن باشن اگر اخرقالیت پس ا یعنی کسا زیاد صحبت میکنه و نقیه باشه خرقم به معنای اینکه که مال تو لغیر اغراس مصرف میکنه حلقم به معنای حرم این معنای که خود مرمون ابن عدی جمهور احسایی در حاشی اشترد من نست کامل حاشی ایچون میخوندم که روشن بشین رو این حدیث حدیثی در مسادر احساسمت موجوده و عمل بخاری نه اومده اما در تایه مسلم موجوده در مصاد احمد موجوده و بهترین سندش هم ده ابو موسی اشعري در میاد در مصاد احمد از ابو موسی عبدالله بن قیس ابو موسی اشعری معروف معروف به کنیه هست، اما لقبتش ابو موسی عبدالله نریه عبدالله بن قیس ابو موسی اشعری خب از صحابه است حساب خاص خود سرکنم اونها باید ایشون داره اولا من قبل از اینکه باید این حدیث پشم این کلمه لیس مننا رو چیزور معنا بکنیم من از لیس کفتن مننا یعنی رو سنت ما نیزنه از های این ما خارجی این مراد اینه پس مراد از مننا اینه و پس صحیح مسلم در اینجا این روید در در باب ایمان آورده اصلا قبل این با لیس من نا من شنا ورده و قبلش هم لیس من نا من از صلاح الهی آورده ورده تو سه تا باب در کیش هم لیس من نا پیش ده دیگه که لیس من نا من صلی قبل الاخر قبل این تو ابواب ایمان ورده این تو ابواب ایمان ورده مراد اینه احتمال هم داره که لیس من نا به بحث شکن نباشه نازل به وقت اجتماعی باشه یعنی کسی که این کارو میکنه از جامعه مسلمانی خارجه تو جامعه نیست تو ما نیستید شما ما بعد مسلمان مثلا من, من مسلمون المسلمون انسالا المسلمون من یدی ما ما یه جامعه نیست چیزی که قش تو جامعه نیست چرا چون کسی که تو جامعه است باید ظاهر و باطنش یکی باشه باید با دیگران یه رابطه داشته باشه نمیشه مثلا گندم بدی باشه به روش گندم خوب به اسم مثلا بذات بوله قائله که خارجی مثلا زیر داره به اینکه داخلی رو بالا مجموعی که بهش خارجی بشه داخلی بتروشه کسی که قش می‌کنه کسی که ظاهر و باطن داره این در واقع با جامعه اسلامی و این مننا رو برای جامعه بیرون نیست مننا من قشرا این همین جدا از جامعه قش و باطن این از جامعه جدا میشه کسی که این کاره میکنه خودش رو با مردم همراه نمیبینه چرا؟ چون اگه با مرحومی من دارم پسیم به اینجا خارجیه شما دا داخلی مرحومی خارجیه این ممکنه که مراد این باشه و که از فهمی که اهل سنت در خود مسلم اون لیس منه این لیس من الدین لیس من سنت نام منه رو گفت میکنیم این لیس من چون مثلا چون این پیش پیشینه اگه لیس منه از جامعه خارجی پسیم ولی حلق دیدی که حرج لکه از جامعه اسلامی خارجی قبلا من نقش از جامعه اسلامی خارج تاثیر میشه این منهلق و سلق و حالا کسی هر بحثی تن میزنه یا زیاد صحبت می‌کنه از جامعه اسلامی خارجی مثلا این لیس مننا این چی اما خود این کلمه لیس منار الف و بی ظاهرا به نظر من فهم مسلم بعد نباشه صادق سعید و اون اینکه علی صامت نوشتن این کلمه ایشون قرار نمی ده لیس مننا لیک علی السنه این بر دین ما نیست بر آین ما نیست کسی که این کار بکنه من عمل از سلاح علینا این بر دین و آین ما نیست این لیت مننا به همین جرد من صلقه ولاخره ولاخره به این را این کلمه لیت مننا اما این سمعیتی که در اینجا آمده هم این روایت رو به متون مختلفی آمده به این نیست اولا این کلمه صلقه هم با سین آمده هم با سال سلره، با اونم آمده و در قرآن کریم هم یک بار مختلف شد استعمار شده خود سلره با سین لیس من نامن خود سلره یک بار در قرآن در سوی کن به علیسانت این هدار کن در کل قرآن بدنی هم از آیه من هم وقتون کمی تبدیر مکی باشید در کل قرآن شد یک مصرف استعمال شده که در همین سوری احضابهایی نونزهی شده نونزهی سوری احضاب سلبو کن لیکن با ساب هم آمده و بیشتر گفتنش را سال درست سر باشه حالا پیگر بینید اون وقتا با دوتا هم آمده لیس من نامن سلق ولا حلم در کتاب نهایی ابن در چند جا این رو اوگرده الان من یه مرور عبارات نهایی رو میخونم تا روشن بشه یکیش من نامن منطلح در ساد رو ای لیت سنت این لیتمنه اهل سنتنا خوب نکر کردیم این نقطهی داره که این قدیمی ها خیلی واقعا ظریف صحبت یک کلمه کوچیک میخوند یک دنیا محنا بود این لیتمنه اهل سنتنا در مقابل لیتمنه ای جامعه اسلامی خارجی مرشن شد به اهل سنتنا این مطابقه با همون فهم مسلمه که این حدیث ها را در باب ایمان آورده که قابل ایمان اول جلد اول مقدمه قیلانی داره بقیهشون ندارن اما یک مورد حدیث شناسی و طریق حدیث سهر و اینطوری وقت روجه و حدیث و ارزش حدیث داره که سالان برسقه شنیه هست اول فهم مسلم بعدش کتاب ایمان این توی مجموعه اولی که لیست سمن نا لی سمن نا منقشنا لی من سه تا بابا و هسته تا عنوانیشون رو بودید. ایشون داره لی سمن اهل سنت نا. من حلق رو در کتاب نایه نرسی من حلق شعره و این در کسی در وقت مسیله موی سرش رو اتاق بکنه این در علیه یه نداره که ایشون نبید. این حلق علیه یکه رو مردم نبیجم ها رو بشه. من حال شعره و انل مسیبه سر اون یک سنتتی بود معنا هم در ها تا مدتها بود در مصیبتی که میآمد خانم ها از مای سرشون کوتاه میکردم معنا از ریش با عنوان مصیبت ریش و کوتاه میکرد نه نه نه نه کوتاه می کرد. حدقه دنبال سر زن بوده ما یک مرد مردم باز هم دنها رو نکرد، نمی‌دونم مثلا جمال میگفتن چون از شعر اهل زمانه. اذا حلثتيه این حالا خود به اصطلاح مسلم عنوان باب رو داره که لیس مثلا فلاح به حساب مصیبت و نها و, و انداء به دعو الجالبیه. این جزء کاره بوده که در جالبیت بوده. و من هر حدیث مل. لعن من النسا الحالقت و صالقت و خارقه تقرد کنید؟ این حدیثت من الان نگارم این کتابی نکرده من این حدیث در کجاست مصدرش نگار مراجعه کنید اون حلقه و خلقه و خلقه و حلقه به عنوان صفت مؤمنت آمده. چون این معانی که مرمول زنی جهو کرده پس مراد از حالقه کسیست که موی سرشون میتناشه خانمی در مسیبت سالقه زنی سبت زبانه تند سلبو کن و از سنت این هدات که هم را داری مواردی خالقه هن هم سبت همون تصد وقت تند که اینجا معنی نمیده چون حالقه که در حال مسیبته به تقدیه اینکه این ستا مورد در باب مصیبت سالره اون زنایی در حال مصیبت جیغ میزنن سداش رو بلند میکنن پس نه خاطرهو به ما یفره مراد به ما یکره مراده نه کساس و کلاه مراده مراد صدا بلند کردن و جیغ زدن اون سالره در اینجا نه به معنی این دوتا معنی از دیگه هیچ کدوم از این معانی نیست و این از اما بگه ارزو کنشون بس کنم در معنی از کتبشون آمده که اصل سر معنی ضربه زدن به این یعنی اینقدر جیغ بلنده که هنم آدم با فریادش و آدم شلاخ اینقدر جیغ میزنه که با به آدم سیریزن با آدم بسه زرب پس مراده از فرق لیسم نامن سلط اگه ساد باشه مراد داد و فریاد و جیرزدن هایی سی از وقت مسیبته نکرد از کلام مراده نه خاطبه هو به ما یکره مراده و به همین قدیمه مراده از خرقم هم، نه همق مراده که آن بیشتر نوشتر های نه مراد پولبرده کردن که مرحوم نبی جمهور نوشید از خودا این معنا رو برده مراد پاره کردن لباس کرده سیابه این ستا حالتی که در هر سه هم با به خانمان نه رفتی به حلقه داره نه به کلام وزیر داره نه به مسئله در درمال داره پس نه به حماقت داره مراد فیغمبر اکنم این است که در جامعه اسلامی و سنت ما در اسلام اون حالاتی که در جاهلیت بود مثلا یکی از حالاتی که بعد بود اگر زن شوهرش میموند و این بعد مثلا بازنشسته بود نوشته در اصل ما شوخی و حاخی وارد بحثا بشن اگر مثلا در عزای شوهر نشسته آزاری می‌کرد می‌گفت این معناش اینکه اینو حاضر شوهر دیگه بگیره هم اگر بلند می‌شد عزاداری کرد یعنی شوهر دیگه می‌خوام این خب اخلاق و آداب و تقالید و فرهنگ‌ها بسنند که بوده من شواهد صادقش هم میگم یکی از کارها شده نزدیک در هم، یه مزج دارم، کم شده در خودشی با شوهر تو آتش میگردد، شواری میسوزد، <تصفيق> زنکی خودشی یا و توالی و که در یک جوامع در حالت مرگ پیدا میشه، این در جامعه ای مسلم خوب هند، این جزء کارهایی بوده که در جاهلیت بوده. پس این سه تا حالت این روایت اصلا چند درصد لهیگه در خوره خلاق روایت مربوط است به حالت زنها در عزاداری یکی طرد جیغ زدن در حال عزاداری به یکی قادر خیال کن تو سرش میذاره صدای ایشون بالا بلند چون ثابت است که بعضی فریادها اینا رو بلند دارن تا اون که اشیتا شده دیدم اصلا کسی در اون حرکت دیگه که کسی بلند صحبت کرده شیشه بوده انايها این بلنچیه بی زدنه اما خرقم خرق سیاه لباس هاشو پاره پاره بکنه نه خورد و نه هم جه نه نه به معنی اخرق الیت یعنی پولش رو مصرف می‌کنه نه اینه نه اونه بعد ما اخرق الیت ندریم اخری هم یعنی دستش دیوانه دستش دیوانه دستش نازان دست نازان دست نازان پول رو خود مصرف کنه ما اخربانیت برای خود خود دیوانه جهالت حلغن به معنای موش میتراشه موی سرش میتراشه چون اون زیوانی از ازشون از شرع احد الجماره معنی این که من شوهر نمیخواد بکونم مثلا فرض پیرم برای اینها در ما نیست نه ثرق هست نه هست نه هست و انصاف قدید این یک معنایی که ایشون گفت ایشون میگه وقیل عراض بیه علمکی تحلق و وجه حال زینه واقع ایشون حل احتمال داده که حاله اون زنهاییست که صورت هاشون رو مثلا میگه مون میگهن مون میگهن مون رو نرس به ازداد برای اینکه اشنگ خیلی بایدی این بعد باز خود. ابن نهایی نصی در ماده دیگه اش داره که لیس من نامنه حلقه من صلقه باصا البته این روایت به لحاظ مرد شاید هم تأثیر داشته باشه شاید هم نداشته باشه من متنشو بگم به لحاظ متن دو سه جور نغرب شده با او هم نغرب شده با وا هم نغرب شده اون نقلی که در کتاب مسند احمد حالا صحیح مسند خوب یادم نمیاد واسه اینکه در نقل کتاب احمد چه نگاه کن با زبت وابه بعضی هم اوه اینجا داره لیسه من نام من سلق بلا سرم بعضی هم بلا حالا ایشون لیسه من من هلق او سلق او هلق بعد ایشون بگه از سر از صوت شدید صدای بلند یورید و رفعه به المسائق و اندال فجیعت به الموت و ید خلوفیه نو مراد از سلق در اینجا نوه خاندنه نه اینکه خاسبا سرفضا کردن جیره هایی چه خانم ها در رخت مرد میدنن همچنه لازم میسایی به شوهر بشتر جیره پدرش هم بوده برادرش هم بوده و یقال و بستی من نمون حدیث این حدیث هست که مطور مختلفی داره بله بری اون من از سالقته و حالقه این هم هست سالقه با سال و حالقه این در ماده حلقه اولده اقایه به اصطلاح باز توی ماده سلقه داره که حدیث لیس من نامن سلق او حلق ایشون رو شد ای رفع اصوته او انگل مصیبه وقیله باز سلق بختن نهو و انتصب کلمر اتو وجه ها و تمروشه اینه به صورت چیدنه لطم خدود به اصطلاح ول اول اصح صحیحش همون صدا بلنه کردنه نبسه خب در خارج غالبا این طوره از هم جدا نمیشن این هم این مسیبتی شبه بسرابی که میزنید یه هم میتنید شبه برای سر اشتماعش بوده و من حل حدیث لعن الله سالغته والحالغه این هم یه محکم دیگه حدیث لعن الله سالغته والحالغه و یقان به ساد این مجموعه که در روایت اهل سنت و بعضی از تفاصیه آیا واقعا همینطوره انصاف قضیه ظاهرا همینه یعنی که حدیث برداشت مرمومه آیه حاجی نوری در اینجا آورده این روشن نیست کار این حدیث واضح نیست اصلا که سرش اینه این روایت رو الان در این کتب ما حتی در مصد احمد همین مقدار آورده ان به سعد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا مرد معروفه و و یکی از روات معروف رحم ابو برده پسر حدی ابو موسی اشعری سنن اونا میشه منتقی میشه له رونو میشه از پدرش هم در صحیح مسلم دو تا قصه نقل کرده که متقابل متقابلا واقع نزدیکه یه ابو موسا در مرض موت در مرضی بود بیحال شد افتاد زنی داشت اون چون که جیغ زدن ابو موسا هم دید یعنی حوات نیمه بود اما اینقدر بیحال بود نستانه صحبت بکنه نیمه اقما مثلا حالت نیمه اقما بعد که ابو موسا به حال آمد اون کلام رو ابو موسا رو و انه برای اون منبر این ها رسول الله چرا این میشه چرا ترکیزانه کنیم فعلمی سمیعتا رسول الله در بردش رسول الله برای من من من من من, من و خرم الهله اونجا دارم شما فهمیدید در مصادر اهل سنت در صحیح مسلم چون این حدیث با موردش نقل شده این من همیشه عرض کردم که پیدا کردن تاریخ حدیث خیلی موثر در فهم مطلب اصلا ابو موسا این کلام رو در برخورد زنش با مصیبت او مطرح کرده تو تازه استا نار میمن طولانی میشه یعنی اینا رو کردم براتون اما اونا دیگه خیلی طولانی میشه نه اینکه وقتی مراجعه کنم الان این سندی که اینجا آمده که جابل باشه الان نمیدونم احتمالاً چون به حال ابوالله نعم هل خیلی جدی هر خواستش ان داشته باشه اما الان نیدم من اون که الان دیدم در همون است که به برمیگرده و قصه داره خودش یه حالت زنش حالا بعضی از امره هستین بعض در همه زن ماهین کرد اون شروع کرد به ناله کردن و سرسوا کردن و جیخ زدن دیگه ابو موسا شوار شروع شروع کرد به جیخ زدن و وقت ابو موسا این به سر نهاره این حدیث از پیغمان نهاره بلکه به حوش آمنتون به حال بیهوشی بود گفت اینی سمیعتا رسول الله گفت لیس مننا من سلقه ولا خرقه ولا حلق در خود مسلم همی رو در باب از دعوا به دعوا به دعوا جاهلیه اینسان نباید به نظرم خودشون رو بابم صوت و خلان رو صوت و دعوا به دعوا به دعوا به نباید این کارهایی در جاهلیت بشه, بشه اینها خوب دقت قلبه نهی که ما در جامعه اسلامی اصلا جود سنن ما نیست ما همچی چیزی رو نداریم. پس مراد از سلق به معنای فریاد زدن جیخ زدن یا احتمالا اضافه بر اون تو سورت زدن چون اینم معنا شده بود این معنای سلق در قرآن که سلق آمده به معنای همون سلم. یعنی بلند صحبت کردن دازدن سلقو کن به علیسان افنه هدان سر شما جیغ میکشن سلقو کن سر شما جیغ میکشن به زبان تون به زبان آهنی ازداتی شما جیب خرقم مراد خرق سیاه پاره کردن لباسه موشنش خرقم مراد حلق خرق زن موی سرش در دخل مصیبته چی آقا به سفات زن شدوی مرد جمع در سر کتاب تصریفه شر تصریف داره استن وقت گفت داشت شطور شطانه نه صورت کرد در زنی را ماده برداره گفت این شطانه نه ماده شد استن وقت ناقضی این استن وقت جمعه صحبت سر حالات زنه معنای که که زن نه این تصالفه معنای نه بی جمعه حدیث تاریخ داره واضحه یعنی شنه نهی شنه داره حدیث تطویق داره تطویق سر مصیبت و واضحه و به نظرم اصلا مرمین که کنون واضح هم شد جای امام نداره همی فلیث مننا همسه لیث مننا داره برای هم داره انه بریه اون داره لعن الله داره اصلا لعن الله و حالقته و صالقه خیلی واضحه که دیگه حلق لعیه نبود داخل در جاهیه برای... حلق بر همین دیگه حالت بود. اما برای نبوده خرقه نبوده اونی که بوده عبارت از این بوده برای زنها میگه ولی ازا اصلا این حالقه هم به هم در یه مست میشوند لحنالله هر حالقته و ساله. نه این من آمده مزکر نمده حاله من زن... من آمده من که هم از مزکر هنهای حاله این روایتی که وارد شده لیف مننا و تا اونجایی که من دیدم حالا زداشتش رو من استقصانه نکردم، تا اونجایی که من نمی این دوست کتاب که من دیدم که در واقعی یعنی سنت هیچی احتمال اینی که مراد از حلق حل لحیم باشه ندوده کسی اصلا احتمالش هم ندوده مراد از حلق و حلق مول سر در مصیبت، حلق هم به معنای جهادت و هماغرد میدید. که در این حاشی چاپ شده که الان آمده از مجموع بهره نرده خرقم در اینجا خرق و سیابه مراد سرقم سرقل یعنی فریاد دادن و احتمالا توی سر زدن این هم هست علایه حاله هر این در موسیبه هر در مال زنان هست مثلا رب به مرگ و حلق لحیه درداد این راجه به این رواید که ربسی نداری ایشون رو اغوردن جواب این رو از که بعد ایشان مرحوم حاجی نوری قدس الله سره فرمودن که وکال کازرونی بله، فیلمونتقا پیه حوادس سنفر سادسه ایشون از کتاب کازرونی که در کتاب تاریخی نهار کرده به ذهن من این کتاب چاب نشده پیشه هرسانه به ذهن من آرده دیگه این اما فکر میکنم منتقا چاب نشده خلاصه اینه که اون قصه آمدن اگه کسا آمدن از طرف خصوپروک شهر پیغمبر اما این اجوی دوره شهر صدق بخود توی ابن هم همون در حوالی سال 60 این من اولشون توضیح بدم دیگه نمیخواد بخونه تا این صح راجع کنم پس این دو افسر ساده ای ایران که سنگار گذشته ریشا تراشیده بوده ها فهمید ما اینطور نیستیم ربی عمر ان به بعفا ها و فخ شاریه اله اخرت این دو تا خبر که در این باب 40 ایشون حدیث دیگری که در این بابیشن و وقتمون شد محطم شد این حدیث اگر بود خیلی خوبه این حدیث از منطردات الان کتاب مستطابه به برسولان جعفریاته حلق اللهی رسول الله من المسلم و من محصف علیه لعنت الله الان فعلا این رو ما نداریم لیکن چون یه تحریر تاریخی ما نشون میده که از سیدان و باشه نیدون شده از سامایی و در جایم هم نمیدونه این ها رو چراها شدیم نیدونه شده رو احضی میکنه و سامان بابا محمد